در بله. خدمت نمی‌سازیم. اون نکته تو بگو. نارهواری است. جناب آقای مهندی دولت آبادی هستیم. جناب آقای دولت آبادی. حای. من یه سال از خدمتتون داشتم، چون که توی این سالها یه خدمت خیلی بسیار بوده در مورد ادبیات که ادبیات برای ادبیات، هنر برای هنر. آیا هم چیزی اصلا اصلا ممکن هست که ادبیات فقط برای ادبیات و برای زیبایی شناسی. درونی خودش باشه، این که خواหนاخوا نویسنده بهنهای آخر عقاید خودش، اندیشه خودش رو توی اثر خودش نمایان میکنه حالا این که دیگه بحث های خیلی کهنه است و من ترجمه میکنم چرا هنوز در میان شما جوانان بازم اونورمیشم. سفر از ادبیات بشوام بگم یک چیزی برای خودش معنا نداره. انسان هست برای زندگی برای دیگران دیگران هستن برای زندگی برای دیگران و هنر هست برای که من ازش هم حذ زیبایی شناسی ببرم هم وقت مطلف نکنم هم با اندیشهایی که در درون نویسنده شاعر هست آشنا بشم و... بی یک مجسمه اگر نگاه میکنم بی تابلو اگر نگاه میکنم از طریق زیباییش میرم به سمت اینکه چه مفهومی درش نهفته است و به این ترتیب من از همون جوانی هم این تذها رو قبول نداشتم هنوز هم قبول ندارم همطور که شما گفتید چون در قرن دو تا مکتب پدید آمد و افرادی هم بودن که تابع اون مکتب ها شدند و هم ازشون باقی نمون تا حالا که باقی نمونده این یک جور واکنش می شود تلقیش کرد نسبت به اون مکتب ها که اون مکتب ها همه بشریتی نیستن هنر تفاوتش ادبیات تفاوتش با سیاست و با مکتب های سیاسی این است که هنر و عمدتاً ادبیات امریس انسانی و مادامی که انسان وجود داره ادبیات و هنر انسانی باقی مونه اگه جامعه بشری مسخ شد که نیاز پیدا نکرد به ادبیات اون وقتی که ادبیات خودش لابد پیدا پدید نخواهد اما اینکه تأکید میشه از اندازه روی ادبیات برای ادبیات و برای زیباشی اینم رسیدن به 2 چیز زبان و قری همه اینها در واقع لازمه ولی ما حافظ رو میخونیم به خاطر اینکه بریم در کنه ذهن حافظ و در پشت و امل ما و روی و لابلای این لپس در هم پیچیده حافظ چگونه به جان نگاه میکنه پس برای چی را حتی ما فال میگیریم از حافظ دنبال یه عقیده دنبال نه عقیده نه دنبال این هستیم که او چگونه به دنیا نگاه کرد در همین لحظه که ما میخواییم از او الهام بگیریم برای هستن خودمون وگه نهی لفظ زیبا ممکنه باشه ولی بعید میدونم لفظ بیمعنا بتونه زیبا باشه ببخشید این شعال من ممیسم حالا شما خودتون یک نویسنده هستین خیلی دنبال زندگی خصوصی نویسنده ها هستن و باستا به زندگی شخصی نویسنده یا عقاید نویسنده داخل محض تا چه اندازه این شما این در واقع روی کرد رو تعیید میکنه این دی مبحث بسیار پیچیده است که در این زمان کوتاه واقعا نمیدونم که خیلی مبحث پیچیده است و اگر بخواید سطحی به این موضوع نگاه بکنید بسیار مکانیکی خواهد شد و من واردش نمیشم برای که اصلا به این صورتی که گهر میشه مکانیستی نیست این رابطه بین نویسنده و اثرش شخصیت درونی نیست یا گفتم شد. اینا مباحث پیچیده است که الان نمیتونم وارد چون منتظر من من ببره به اون هنرگاه سپاسگزارم استاد ما صحبت